قصه های هزار یک شب شب پانزده هم گدای سیم گفت ای خاتون من به فراز کوه بر شدم و به سلامت خیش شکر گذاردم و به میان قبه رفته در آنجا بخفتم از هاتفی شنیدم که گفت ای hey, فلان چون از خواب برخیزی خوابگاه خیش بکن و کمانی با سه تیر که تلسم ها بر آن تیر ها نوشته اند، در آن مکان پدید آید آنها را بیرون بیاور و آن سوار را که به فراز قبه است با تیر بزن تا از هم فرو ریزد و مردم از این بلیت برهند. و چون سوار را بزنی او به دریا افتد. تو کمان را در جایی که بود در زیر خاک پنهان کن. هر وقت که بدین دین سان کنی آب دریا بلند گشته با سر کوه یکسان شود. آنگاه زورقی پیش تو آید و در آن زورق شخصی بینی با او به زورق بنشین که به ده روز تو را به کنار دریا برساند آنجا نیز کسی را خواهی یافت که تو را به شهر خود برساند ولی در این ده روز که به زورق نشسته ای نام خدا بر زبان مبر پس من شادان از خواب برخواستم و بدان که حاطف گفته بود کردم و ده روز در زورق بودم که جزیره نمایان شد من از قایت خرسندی تکبیر و تحلیل گفتم در حال آن شخص مرا از زورق به دریا افکند من شنا کرده خود را به جزیره ای رساندم آن شب را در همان جا به با امداد برخواستم ولی راه به جایی نمیدانستم و حیران به هر سومی رفتم و گریان بودم و نجات از خدای تعالی همی خواستم که یکی کشتی پدید شد. از بیم به فراز درخت بر شدم. چون کشتی به ساحل در رسید ده تن قلام از کشتی به در آمده در میان جزیره زمین را بکندند. و خاک به کنار کردند طبقی چوبین پدید شد طبق برداشتند دری گشوده شد آنگاه به کشتی بازگشته نان و خربوزه و آرد و روغن و اصل و گوسفند از کشتی به درآورده آورده به دانجا بردند پس از آن به در آمدند و جامه نیکو به در آوردند و در میان ایشان پیری بود سال خورده و بلند بالا که از قایت پیری نظار گشته و دست پسر ماهروی مشکین مویی در دست داشت و همی رفتند تا از دیده نهان شدند. من از درخت به زیر آمده خاک از روی دریچه برکنار کردم و طبق چوبین برداشتم. دریچه پدید آمد. از آنجا به اندرون شدم و از نردبانی به زیر رفتم و به فراخنایی برسیدم که از آنجا دری به باقی گشوده می و از آن باغ دری به باغ دیگر گشوده می تا سی و سه باق. و در همه آنها درختان بارور و گلهای رنگین چندان بود که در وصف سخندان نمیآمد و در آخرین باغ دری دیگر یافتم بسته چون در گشودم اسبی دیدم زین کرده نزدیک رفتم بر اسب نشستم اسب برهوا شد و مرا به فراز خانهای گذاشته دم خیش بر یک چشم من بزد در حال چشمم نابینا شد و اسب از من ناپدید گردید من از فراز خانه به زیر آمده ده تن جوان برهنه بدیدم از ایشان اجازت نشستن خواستم مرا من کردند از پیش ایشان غمین و گریان به در آمده شبان روز راه می پردم تا به دار و سلام رسیدم و به گرمابه اندر شدم. زنخبه تراشیدم و به صورت گدایان برآمده. در شهر بقداد میگشتم که این دو گدا را دیدم. به ایشان سلام کردم و غریبی خیش بنمودم. ایشان گفتند ما نیز غریبیم. پس ستن یار گشته به دین مقام گزارمان افتاد. و سبب نابینایی یک چشم من این بود دختر گفت بند از این هم بردارید کس از آن دختر روی به خلیفه و جعفر و مسرو آورده گفت شما نیز سرگذشت خیش را بیان کنید جعفر گفت در وقت آمدن گفتیم که ما بازرگانان تبرستانیم از مهمانی بازرگانی بازگشته راه منزل گم کرده بودیم دختر چون سخن جعفر بشنید و ادب او بدید گفت شما را به یکدیگر بخشیدم پس همگی بیرون آمدند خلیفه گدایان را به جعفر سپرد که از آنها پذیرایی کند و خود به مقر خیش بازگشت چون روز برآمد خلیفه بر تخت نشسته سه دختر و ستنگدا و آن دو سگ را بخواست چون ایشان را حاضر آوردند خلیفه به دختران فرمود چون که از ما درگذشتید ما نیز به آن از شما درگذشتیم اگر مرا نشناختید اکنون بشه ناسید که هارون و رشیدم و به جز راستی سخن نگویید. دختران گفتند ای خلیفه ما طرف حدیثی داریم چون که به دینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لبز داستان فروب است